فرنگیز سرش را رو گذاش روی دستش و دستش را رو روی میز تکیه داد. پشت انگشت شارعش را میگذید و فکر میکرد. چه میخواستم بگویم؟ همان احساسی که به بنده است داد. وقتی میخواستم هنر خود را تک کنم. همان گرفتاری و ناکامی نصیب من شد. من برای بالا رفتن از این کوه بلند ساخته نشده بودم. آن را نداشتم و تازه میدانستم که آنور کو چه هست اما او نقاش بود او زیبا زیباتر از آن چیزی که واقعا در قله کوه وجود داشت در آدم تصورش می و از این خیال خوش نقش و نگار بیشتر لذت می برد او اسیر آینده بود آینده را زیبا و روشن و صاف و خالی از گرفتاری و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 چقدر تلاش کرده بودم که از بالای بلندی دنبال این دور تابان که از لای سنگ و شن ها و از میان جوربایی ها رو تند رو می بدوم و آن را بیابم دنبالش میدویدم بیگدار به آب میزدم جانم را حاضر بودم به خطر بیاندازم، میافتادم پایم به سنگ میخود سخ میشد باز بر میخواستم میدویدم از میان ریگزارهای داغ، از میان خار و خاشاک با پای زخم و خیال پر از ترس میدویدم. و وقتی که آن را به دست می, می که شیشهی بیش نیست تمام خستگی راه به تنم می نشست و عرق سرد تیره پشتم را می لرزند. هزار بار به خود گفتم از کجا معلوم است که این دور هم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 اگر در کارهای خطرناک او شرکت نمی مرا دوست داشت همه مردها از زیبایی من صحبت می کردند او یک بار هم زیبایی من را به رخم نکشید آخ چقدر آرزو داشتم بدانم که من برای او دلپسند هستم نگفت در صورتی که او هنرمند با استعداد میبایستی بیش از هر کسی متوجه این افزوم رخ زیبای من بیشتر شده باشد. برای او زیبایی من وجود نداشت. او فقط دلیری مرا پسندید از خونسردی من در کارهای خطرناکی که به من رجوع می کرد لذت می برد و شما می دانید که این دلیری من مصنوعی بود. من ایمان نداشتم. برای خاطر او حاضر بودم جان خود را هر آن به خطر بیاندازم. اما فقط محص خاطر او نه برای مردمی که به آنها داشت جانبازی میکرد تازه از این گذشت و من از او اتدا نداشتم من, بی من بیچاره چقدر باید حساب پس بدهم او تصور میکرد که من با چشمهای افزونگر خودم دارم زجرش میدهم این فکر مرا شکنجه میداد که شخصیت من را، وجود من را نمیخواهد او فقط کار خودش را دوست دارد و بس آن شب در کنار نهر کرج چه به من گذشت گفتنی نیست کلمات نمی توانند احساسات من را بیان کنند در پرتو محتاب آشق و خوشبخت محبوب او فارغ از گذشته امیدوار به آینده غرق در حالتی که در زندگی چه کم نصیب هر جنبندهی می شود دست به دست هم زیر درختان زبان گنجشک پرسه میزدیم. نغمه آرام و عشقنگیز آب را میشنیدیم؟ هر وقت فرصتی به من دست می‌داد و دروبر من آبری دیده نمی بوسه می و بوسه می دادیم کف دست او را سرنگشتان او را چشم های درشت و زلف پریشانش را میبوسیدم. میبوییدم. می ترسیدم که این حالت دیگر تکرار نشود و از همین جهت باید برای یک عمر بدبختی توشه گرفت چه وحده ها به او دادم چه ها گفتم اقرار کردم که از روز نخستین ملاقات با او تا امروز دوستش داشتم گفتمش که اولین بار او را در آتلیهش دیدم با چه حرس و ولا و شیرینی سخنان مرا سر می کشید. برایش مفصل حکایت کردم که نقاشی را کنار گذاشتم چون که مورد تشویق او قرار نگرفتم چه سیمای قمزده ای داشت دبانش خوش شده بود و می لرزید با دستهایش چنان تن مرا فشار میداد که نفس من بند می آمد. چه درد شیرینی گفتم که میخواهم تمام عمر مال او باشم رفیق و همدوش و همکار و همرزم همبازی و همدرد او باشم که ابری دور ماه پرسه میزد گاه قرص ماه در سیاهی میرفت آن وقت آب کرج مرموز و خاموش میقول میقلتید و شاخه های آرام سر سرتکان میدادن سپس ماه خندان رخ می نمود و نقره مزاب روی آب پخش می کرد زن کلی از دور آواز می و می پیرمردی کنار خیابان نیلبک می و آهنگ های زندگی ملالتبارش را می سرود ما وحشیان همدیگر را می بوسیدیم دست او را به سینه خود فشار می دادن. به من می گفت چشم تو مرا به این روز انداخت. این نگاه تو کار مرا به اینجا کشنده. تا با تحمل نگاه های تو را نداشتم. نمیدیدی که چشم به من به زمین دوخته می شد؟ به او می در چشم من دقیقتر نگاه کن. جز تو هیچ چیز دیگری در آن نیست. می گفت نه. یک دنیای مرموز در این نگاه نکفته است من آدم خجولی بودم چشمهای تو به من جرأت دادند آن وقت من دستش را می‌گرفتم. کف دست آنها را می و می چه روح بزرگی تو داری من این کیفیت تو را دوست دارم این شور، این حرارت و این سوز و تشنگی تو را می خواهم. میخوام همیشه با تو زندگی کنم همیشه با تو باشم